وسییدن روی ماه نویسنده و کارگردان همایون اسعدیان بازیگران شیرین یزدان بخش احترام سلام ولی ماشاءالله ماشاءالله تکالیف دیگه تو خوب انجام میدی رابعه مدنی خال فرو یه رش که بی بفم چشوم سیاهی میده حسه می‌شه مسعود رایگان حاجی قا مستفوی بخشه این روزا ما خیلی داریم وزحنت می‌کشم صابر عبر آقای حاج حاجی ما اسکی هنوز دوستای باکو زیاد داریم شبنم مقدمی طاهره گفری سر ستاد بزنه من گفتم چیزی نیست شما فقط نگران خال فروغین و سعید پور صنمینی مشغور بود داد شما درد نکنه بعد نیست. ولی دیگه این کمرشا نیست دکتر خودت فرهاد از تهیه کننده منوچهر محمدی برنج توی دیگ میجوشن و منتظر زعفرونن که مامان احترام توی دیگ میریسه سلام مرسی اللهم سلام محمد و مامان احترام جونم میشه یه چند روز بمیشتون بمونم برای درست کندن میکن مگه تو خون خودتون نمیتونی درس بکنیم نه بابا و با دسته این نویدون استیم یه بندارم با هم دوام کنم نگار خانو بی خودیم باوان احترام واسطه نه شما اگه درس خون بودی نگار خانو میگفتی خودمو بس باقي بچه‌ها درستون می خونید حالا نگار از خدا خواسته قشاق همزن دیگه شله زرد رو میده مامانش شوخی بود درست کردن که صحبت کنه هلخان کردو کامدم اعتراض نزد ذاتی راستیک خارج رفتن انداخت تو سرش دیگه پاک کبوی شده خاله کجا چی میدونم کانادا میگم سرد اینو بفرستیم درسشو بخونه سال دیگه هم ندیدو بفرستیم این هم یه دختری تمهان میشون خیلی آمان باشتنه که قضا خیره ماده سفر رو بیندازیم پلورم خاله فرو ککتی یک کدوم باید بره اومد قبل من رو چه سری این پلور خاله فرو اصلا یه تعمه دیگه داره نه بایده خوش بخانه خاله فرو این همه همه خواه این من قربونه مامان اعترامه خودم ام. برم, برم. برم. که اینقدر دلنازم شده فری جانا بیا مادر این گوشت رو بده شوهرت چیک کنه؟ مش منغلم رو قاریختم گوشه حیاطت. حباب دیگه واسه چی؟ خانوم جون، همو کلهش بس بود. با بچه بچه‌هاست. نهی قرمه سبزی گوش نداده. خب دوست نداشته باشه مامان جان. گوشت که نمیمونه. اونقدر دوست نکن تو خدا این بچه بچه‌ها رو. پس مامان این به خطاتیه. نگاه کن شما عمرن کسی تا الان چه یا حسینی نشده. خوشی زره از این خلاقیتتو درس و مرش خدمی کردی شما مامان مگه شما سالم خلاقیت هم میذاریم تو هم لازم نکرده هر هر پیرو جواب بدی تقصیر خودش دیگه گیر میده گیر میده یعنی چی آدم با مادرش اینجوری حرف میزنه چشم هر چی شما میکیم خاله فروغ خاله فروغ خاله فروغ جان پس این پولو چی شد مردی من نگی خاله فروغ با جایی شما خاله فرو، چی شدین خدا قسمت کافز نکنی ای دل درد اما نمی بریدیم و درد خواه چرا به بابا نمیدین نتار حرفی نزنی ها دی جانش نداره. دو هفته ای هی hey, من کشنده بیمارستان همه جانم سوراخ سوراخ کرده آخرش هم هیچ ای بابای تو این نذار تو گور دست نیست این 400 کباب حاضر نشد بخرمش شما شما برینجا بکشین کبابا آماده میشن با نذام با نذام اینا فلوخ جی ابوذر نذ زده بالا این بابا چیش نیست خودشو لوط میکنه خال فلوخ که کسی نداره حالا یه کمی هم خودشو واسه ما ها کنه به جای برنه میخوره که من با ایزانی ناصرو نفس که یه دمیو میاد میره برای کی خودمون روز کرد. این قربونه برام مامان چون شما که هزار تا ناشتش. این ماشالله نگاه سه صد دسمال چند اندازه شد. برای همسره زبونین نچسید فکی. نگاه نکن. تو اینا چی می بریم آوازی مش قربون اون یکی شان می خونه آقای رو هم ها می خونه روبرویی است. ما در این آقا فادر داره. یه ذره بعد معطر چیسا باز بکنی میخوای بری یه چیزی هم تنه. بمونا. سوای که از کوارو حالا خوبه دلت درد میکنه ها. دکتر گفته کباب برات خوب. شکر، های جزء. خدا فدا همی. خوچم اد؟ یه رم شدید. گذاشت و بخو؟ دو کار خنده باش. همه دو چون. ازیدم. اشتهایت و داغی برادرم سالم باشه دکتر جون چون؟ نه. آمپولی قورسی نه دیالش بعد میشه. پس ما چرا یه سبکی زد برای وقتی کشنبه بعد بخو؟ تو ویشین ممیه. پس من یه چن. یه لف شلی زدم بذار ببر بر هم کارش. دست در نه. خانم فرو. از آهش خبر. شکر خدا خوبه. اشتر دردن زنگ میزنه همه زب خالت میشه از شام افتادیم دختری یا پستر؟ بله خدای پستر شو اسمی شو محمده این محمد چه خاطره ای رو برا بقیه زنده میکنه که همه نگاهاشون رو میدوزن به سفره و ساکت. خاله فرو ساکت رو بستیم باید بریم کاشان عروسی عروسی بدکی گفتم عروسی نیدا دختر عاطفه نیدا؟ مگه وقتی شوهرشی؟ ای باما این لکه ها یه هم برداری خالی فروت این هم دست نداری؟ نمیخوی به بیمانستان شسته بازی؟ میرم بزر حال بازی بگیرم با اون که شما فراموش کن دکتر. چی شو شیشو بیمان جان باما؟ شما سکر نفس هم گیاریم من قدر دکیه هواست. ما آجازو کمتر بریم بیرون رو خدا باشو باشو این شروع زردار بزنیم بابا زرد بزنیم بابا. بابا بابا خلی خیلی برد چیزی نیست؟ نگران نشو بابا باش چی شده؟ بابا, بابا. نمیده درد باشید یه حال نه باش خانوم آمان احترام بسر سرجن هست هاچ خانم تا قربون گونی رو میذاره رو پله کنار گونی میشینه هاچ خانم دست رو درد نکنه بزن همونجه کنار پله میگم دیگه خیالت هم راحت ها از این برنجس هم میانیست ایمال شماله آستانه است والا هاچ من نمیدونم یه چند روزیه یه مات لبی رو برات بگم اتفاق میکنی سلامش خوربو. سلام سلامش سلام دکتر جو سلام مسکن شما کمرتون بیسنه دیگه؟ ای لبی دکتر مالی کار کنم ماله میگم داری میری تو این برنج جوان با خودت ببر هاچ خانوم سختشه شه اتفاق دیگه نی نگاه خانم جان مامان اترا اذیت نمیکنی داشت خوب میخونی شیطان نمیکنی چش مامونه چم؟ بگم فروخانو نخوش بود اخی من که امبالانش درمید مدم مدم علیکسلام مامونه چلو تو؟ گفت کار دارم بعد برم خوبی خاله فروخ چشه؟ خاله فروخ نمیدونم فکر کنم بابا گفت همچه هم بیمارستان نمونه پایین تو همین اتا سرسده صدا نمیکنی که اصلا روزنه ندارم آن. خور بونه ما با در انترام خودم را لوس میکنه با انترام این وقت کاری داشتین تارف نکنین دا. نگران در سمانم نوشیم دگید مخلصتونم هستم یه وقت برای شفت چیزی درست نکنین دا من که شانخور نیستم هنوز میشه این میدوه در نمیده نمیخوریم من شب و شب نمیخوریم فروغم اگر این عادتی شانخور در از سرش میفتند علل الهولو رسوناته تشويه این جسد یعسدی علاقه دوباره به کافه کوچا پدید آورده این ايه ای. دختر چیه نشی تازه غذا خوردنی؟ مممم. بیامس بچه آدم میشین سر میز شام میفهم کنم بیارم بخوریم اینجوری سر میز وقت میگیری جانه سلام علیکم الحمدلله شوش تو خوبی؟ چرا فروغ و بیمارستان نگه داشتن؟ مگه چیزی شه؟ پناه برخدا مامان احترام جلوی گوشی تلفن میگیره تا مامان نگار صدای خندش رو نا چه مزاحمتی داره تو اتاق درسشو رو میکنه <تصفح> نه تو نگران نباش به دکتر سلام برس باز. خوشی خوشی جونم تو رو ماس کن سکو بزی کنر حواظ تو بده به دستمش اینقدر هره کرده نکو خوب نیست تو بیس 24 سر نیشش باز باشه چش قربونت <تصفيق> برام من نگار اخماشه تو هم <تصفيق> خوبه خوب تو مزخره کن بیمزه <تصفيق> <تصفيق> من <مزه> سر خونه خالی فرو حواظ که ندار بنده خوده یه موقع میمینی گازو روشن گذاشته باشه چی؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مامان احترام گل به پهنای صورت میخنده از کارای این نبی سب مامان احترام آروم آروم از حیات تایی خونشون با برداشتن یه قدم پا میذاره تو حیات خال فروغ تنمون دیزه بون بسه نه فرد فروغ میگرده. رو تختی خال فروغ و که یه پارچه زخیم قهوه قهوهیه رو تخت صاف و میکنه میشین همونجا کنار سبد بافتنی و کامواهای های خال فروغ و چند رج بافه. تو این کچه قدیمی درسته که ماشین به زحمت پارک شده اما بیشتر آدمایی که در گذرن یا کنار دیوارا نشستن همسن همین بجا سلام شد سلامات خانم داریم این ستا خود دیگه امروز شنبه و رسیتش یه چیزی میخوام بهت بگم اتفاد میکنی وقتی مامان احترام به صورت مشقربون نگاه میکنه مشقربون هر کشو منی خوره یادم میره دیگه حالا عصر که خواستم بنجرخن توی بیرم تو اون تو موقع یادم میاد مشقربون بنجرخن ایکی دروستی آوردی حالا آره اونو کیا درمه من آقا محمدی برش روغن خواسته گفتم برای این که خواستم جلسش رو برم سر رو بیم بیش شما وگرن من یادمه این مروش خانه میدام امشب مهمون دارم اتفاد میکنی؟ خب این نیوه خواسته دیگه دارم برش میبرم شما که گفتی درید می ستاد یا خب چیزی شده نه ببین من حقیقتش این این زهده که آورده میدی پنی شما این یادم میره اصلا یادم برای رو ما مثل مامان احترام سر از حرفای مشغور بوندر در بود چقدر زود به زود همه چه عوض میشه بله آخه مامان احترام تو این شلوقی اتوبوسه آخه چی شده؟ تصادف موتورسواری سواری روی آسفالت پرخون خیابون پارچه رو صورتش کشیدن و جمعیتن دورش جمع شد مامان نهتارم خیره کنار دریاچه پارک پشت توری چی زمزمه نمیکنی؟ پسر نارنجی پوشی در حالی که جارو میکشه دختر دو اخه سوار دیت میزن سلام علیکم سلام علیکم شما تازه اومدی بره عباسه با بازنشسته بازشست شدره این شما سلامت باشه بیا مادم من فاتحه یادت ناریم خدا رحمت شد سلامت به یکاسه <laughs> شو لزه مامان افترام چه جوهای عجیبی میره اول از یه در آهنی بزرگ میره داخل بعد از کنار یه زمین تازه گد برداری شده رد میشه بعد از یه در آهنی بلند که رو دیوار کنارمون عکس شهید و تازه نقاشی کردن داخل میشه کارگرای نقاش مشغول کاردک کشیدن روی دیواران مامان افترام به زحمت پله رو یکی یکی میره بالا این ساختمون قدیمی کلی کار داره تا یه ذره رنگ و لاحب بگیره پیره مرد و پیره زنهای روی دینکتا منتظر مردی پوشه به دست از پله ها میاد باید سلام علیکم سلام از خانم خبه اینشالله شکر خودم چه خبر می میبینی که داره نوانه میشه آج آقا مستقبی نبودن نه بودن تو اطلاقش منتقل شدن یکی که هفتهی هستی رفتن آقای فیز اومده جا شد آقای مرندی چیه؟ اونم بازنشسته شد خیلی ها رفتن یه ده پازنشسته شدن یه ده باز خدید جان منم یه آخر کارم ولی شما اگه کاری داریم میتونین با آقای فیز مراجعه کن آدم خوبی. به نم صدا هست اما کس تو اطلاق بداش نیکسه مرد جوون کیلو دستش میگانه چای و دست دیگرش کاسبی از پشت دیوار پروانده ها میپره سلام علیکم علی چه فرمای عرض داشته من احترام سعادت حق شناسم مادر سید حسین حق شناس سلام علیکم معلوم معلومه شما کجایی بفرم بفرم عاشقانو ما دیگه داشتیم نامید میشدیم آقای پومنی بگیم یه چای بیان تلفون بزنیم تلفون لازم نبود همه میدونه ما شنبه اول هر ماه اینجاییم از بچه ها خبر تازه نرسیده فکرم رفتی سفر عاشقانو همین دفته بیش نهای پرستادم برگشت خورد تلاکی عوض شده آره بله ها عوض شده من یادم رفته بود بگم شهرمندی چند روز پیش اول رو پیستدم پیش مقتمد محل مشغوربون حالا نمیدونم گفتن سر کوشه برقانی داری برشدیشون شوار برجه داری برشدیشون شوار برجه دست شما در باید. چی باید به من میگو مرز میکنم خدمت. شما چاییتون رو نکمونیم به لطف خداش خانم بچه ها تو آخرین تجسس که تو مناطقه حملیاتی داشتن موفق شدن بیکر تعدادی از رزمنده ها رو پیدا کنم البته میدونین که شناسایی و بعد از 20 سال خیلی کار ساده نیست ولی خب بچه های استعداد؟ با بررسی همه مدارک و همه نشودایی که همراه شاهده بوده تونستن تعداد زیادیشون رو شناسایی کرد. بودار شوک حسین آقای شما هم جزء همین شاهده است. تشریف بیارین که عرض کنم خدمتتون آخر همین حرفه. از دیگه مامان احترام هیچ چی نمیشنوه. انگار پف زیر چشاش بیشتر شده. چینای بالای لبش سفید تر و تفسش آخی تفسش باز به شما رو افتاد دیگه عشقی نمونده که حتی دقل چشاشو خیس کنه آبغند مثل همیشه فقط ثانیه‌ای ای اونا به دنیای دیگرون برمی بذار به تریاش کنم. باید ببخشی شمارم به زحمت انداخت اینکه زحمتی شما میست گفته بودن که دیگه امیدی به زنده بودنشون نیست اما خب تایدل آدم انگار بیزاله تموم هر ماه بیا برو منتظره یه خبر اما نمیدید نه دیگه اشکی اینم حالا کجاست آشخانم یه فرم بهت میدم اینو پر کن اجاله هم با. راحت سر افتر تموم شد بذارشون میسه من با زد بد برم بانیم آشخانم اگه کاری چیزی هم داشتی آقای فومنی هم میرسه خیلی هم پدر پشتنای. سادات به رسم همیشه چشاشو با چادرش میپوشه. احترام سادات چند تا از این فرما پر کرده باشه خوبه. 20 سال آزگار، انگار تنها تو این اتاق داره این 20 سالو رج میزنه. کنار دیوارهای کهنه و رنگ پریده یه در آهنی تازه رنگ شده است که قفل بزرگی به اون زدن کنار درشم روی تاب رو نوشتن سالان بازم مثل همیشه احترام سادات راه میفته و از خط آبر پیاده رد میشه باز میاد میون دنیای دیگرون موتوسوارا، تاکسیا، زنا، مردا، بچه ها. اما امروز هیچ کس نمیبینه فقط تونتون را میره لنگ لنگون و سر بالا و خسته مش از تو مغازش حالشو رو می بینه فرو فرو علیکم فروعلیک سلام چیه چرا اقل نفس نفس یه ببیشی ببیشی نکن تم اون دویدی دو فروغ و فرد. بله الان هم تو اتاقشون راحت خوابیدم چیزی شده؟ میگم مامان جان معلوم هست شما کجایین؟ تو این هوا اگه نفستون بگیره ما باید چی کار کنیم این وضعیت خانه فروغه ما باید درشوری شمارم داشته باشی؟ تاهره خانم حالا مگه گفتی راحت گرفته خوابیدی مامان یه دونه از این های اکسیژن براتون گرفتم گفتم تو خونه باشه الله ذره نذاره نگار بهتون میگه چطوری ازش استفاده کنی اینم ماسکه ماسکی برید یه دقیقه رفتن خال فروقو برگرده گفتم این چند روزه پیش شما باشه خیال منم راحت شد خیلی خوبه هزار ماشاءالله فشارتون تکون نخورده میدون چرا برای که بیکار نمیشیم مهم من هیچ وقت بیکار نمیمونم هرچون شده کاری برای خودش جور میکنه دکتر فروغ شده شما که هیچ وقت دروغ نمیگی حقیقتش حال فروغ خانم خیلی خوب نیست این دلدردشون البته جواب چند تا از آرمایششون هنوز نیمه ده. چقدر وقت داری یعنی همکه چی بگم اون دست خداست نباد نامید شد که اما واقعیت اینه که زیادی مهمون ما نیست خودش میدونه؟ نه به این ندونه بهتر این قربونت برم الهی خودم نگران میشه دیگه ده بار به خوده از شرکت زنگ زدم دلم هزار را رفته میگم یه موبایل برات بگیرم میگیرم به خور همه من رو چیدم رو میزه کنار تختشون که قطی احمنه فرا فیلم <تصفيق> دی. ما تربیت صبر مقاسم اش خربون. میشه روی خرما باز کنه واس خیرات. کاش اینجوری هم نمیدیه یه چیز سنت کو. راسی ستاد چه خبر بود؟ هیچ مسعمش. ان شاء الله که بهر می‌گاد. یا الله. این بار مش با کاسه چینی گل سرخین. ا. سلام حاج خرمون سلام بخیر جون اصلا میادم پیش شما ماما ناهترام گفت اگه میشه لطفا یه جبه خرمون واسه من بفرین برای خیر چش خدا رحمت کنه با جون ماج گوهه ماما ناهترام چطور سلام حاج قربان عزیز سلام باشو دوستم این خدمت شما دست شما درد نکنه بزنن به تخته حسابی رو افتادی شالت میبندی باد گرمی گردش داری دست شما در نکنه بعد نیست ولی دیگه این کمار بشانیست دوکتار خدا که میدونی دیگه جنس دست دو خونه. سلام من سلام حال شما خوربون شما اشانه که خداوند به همه اون با سلام خانو خدافر خدافر خدافر من خود تذجاره دکور شدی خیلی همچی آشفته بودی خوب حق داری اومدم ببینیم اگه, شد اومدی. اگه اسفنج خوب خوبشد اومدیم اگه اسف ناج آقا چی شده؟ مگه قرار نبود شما تستریون سبزی قرمه میخوام. این ماجرای فروغ هم بهانه خوبی شد تا بالاخره چشمای مامان احترام خیس بشن. آخی عزیزم. بهتره. چه نه؟ بی والله جاها چه خبر نسته همیش چی میخواستی بگه انشالله برمیگرد تو هم خوب خودتو زدی به مریضی و این تاعت رو راه اندختی یا؟ نه جان نداره دیشب تا صبح پل روح هم نذاشته نفر بهت گفتم یکی دو شبیه اون و پیش ما تنها نباشی بهتره اه. اینجا راحتم آمه دو نه تو شبی یکی بیاد آمه نحترام تو صندوقچه چوبیش چیها که نزاشته کلی نوارکاسه با جلد و بی جلد. بعد از شنیدن این موزیکا باید یک راست رفت سراغ اکسا قدیمی و جدید رفته ها و مونده ها سیاس و رنگ به به زنگ ایش بخاری گلدوزی شده زیر چراغای گردسوز پای بلند و قابکسار چوبی اینا نواهان فکر کنم حسین این یکی باشه پسر جوونی با ریش تونک و موایی که تو پیشونیش به یه طرف شونه زده البته با لبخند خوب منم یوشکی بایسم زاختی هایی تو رو چوب بزنم تو رو بچی جمبی در درس و دز منم تو حال خودم باشه الهی قربونت برم که نشستی داری قصده میخوری نگران خالف و رو رودوی چیزیش نیست که با با در خوادش رو میکنه خب چی لس میکنی چی بچه درست کن میگم مالان ترامین عتیقا که چیه مال زمانش خاشقی شما با هیا کن دخته واچی مگه دوری جوونی منو بابوزرگه از اینجور شیزا نه بود مال دای احمد که شون به گروه نمیخوره مال دایی حسینه اونا رو داری به همین ریزه خودتان هم باید مرتبش میکنیم کلا ایوال دایی حسین هر سنی اقتضایی شده. داری احترام صدای کجایی؟ سلام خالا فروخت سلام خالا فروخت شما ماشالا خوشخوابی نه؟ خوشخواب <تصفح> خوش و خوشخورا؟ مگه ساعت چنده؟ یه ساعتم که بیش ساله قبیده خوشکه در چون آب بیارم؟ خال فروختی با یه آب خالی گلوش نرم نمیشه آخه بفرماییم بسه درد نگه بسه دیگه تا این نار جمع کنمه با بیزه تو اتاق من چشم خوشمزه شده اما اگه من اینه بخورم سیر میشم شام نمیتونم بخورم ها نه ترس شام آخرش این شکم تو رو به کشتن میده شیرمیش کمه شیر بر شما خوب نیست پازه تا زده بوی کز میده خالف فرو لعنت خدا باشید یک کاسه دیگه بیارم نگار خانم خواه خسته سوته تهشو بالا آورد. چاش کوچیک بود. دادا که نبود. <تصفح> به جایی این سر سفیت محتشمجانی برو تو ثروت به کارت dere. چش چش. حالا فروینو تمام کن این نوزاد به دنیا اومد، رفت مدرسه، با نزدیک دیپلم بگیره. اولش قرار بود دختر بشی. بعد تصمیم گرفتن پسر بشی. هرچی چی بافته بودم همش شیکافت. یه رشکه بی بافم، چشوم سیاهی می‌ری. خسته میشه بازم خال فروغ و بافتنی همیشه نیمه کارش حاج مصطفی خوب بود رفتن از اونجا حاج اقای این رفتم خیلی ادیم رفتم خال فروغ تمام حواسش میره پیه خنده هایی نگاه ازیزم چه از اونی خنده سجاده چوبیش روی تخت نشسته و تصبیح میگرده دونه به نگارم بشقاب غذا به دست کنار تختش تو اتاق مثلا درس میخونیم دختر تو قرشتشو میکوری؟ نماز تو میگه تو دیگه الان وقتی شورد کردنته باید این چیزا حالیت باشه حرفا بذاریم آن احتراما من که هنوز به تکلیف نرسیده. کلی ماشاءالله یار ماشاءالله تکالیف دیگه تو خوب انجام میدیم من به سن تو بودم دایی احمدی تو داشتن دایی احمد؟ اون بزرگی؟ علی بگردم. دستیت ملانه. مایسر میرا خالی فرو. تلفنت که تموم شد در حیات بره قرف. بازم احترام ثابت یه ظرفی دست و داریم میاد سمت مغازه مشغور دو دوتا مهندس جبونم دم مغازه مشغول کن مشغول کارم. سلاماش خانم. علیکم. چی خبر اینجا؟ والا این آقاین مهندس ها قرار اینجا رو بکوبند رو هم. آخه اینجا قراری دنبال این خیابون خیابون بکشن. اینجوری. اتفاق میکنید. بینه که خونه های اینجا همه قراری خراب قرار شد. اول از ه عشقانم قضا بود بابا خودم این چیزی درست میکردن دیگه. برای نهار این بچه هم که دارن کار میکنن یه چیزی تعییه کن به حساب خودم شما نگران نباش اون ردیف عاشقانم مشخور بگم پیغام ستا تو یاد اطرخ من بگی مثل همیشه هرام ساداد از کنا سلومین دازر بسنده بزرگ روزش دیرم نهیمد اتفاد میکنی یه جوانه اومد اینجای چیزایی تونتون گفت و رفت ببین از اون حسطانه من منقله به هم مشانه شد خوبه چند بار هی دلگلی کردم بگم ببین مشکورده تو حالش که نگفتی نمتشم نمی‌خواد اصلا بگی بذنی این موضوع بمونه بین خودمون خودم چرا شم از من خود این بار احترام ساداد ماسک زده بود، تو اتوبوس سر پاس بازم ستاد و انتظار کهر من چند بار بگم شما شرقاً و غرفاً هیچ مشکلی نداری شوهر شما مفقود و جسدی نه ایشون همین کسایی که تا احترام بیدن. تو حال خودش رو و زن جوان این طرف و اون طرف میدونه مش خانم وضعیت من به خدا خیلی فهم می‌کنه پدر شوهرم که عمومه اخی حرفا خالی شما شیست. پدر رو بیاریم اینجا ما باشون صحبت میکنیم فعلا با اجازه نمیاد یعنی نمیتونه بیاد بیچاره 10 ساله که از خونش بیرون نیومده حاج آقا تو رو خدا یه دقیقه سلام حاج. علیکم علیک چند لحظه وقت بیرون خارج شما دیروز عطر بودین عرض کردم نشوید یعنی اینقدر اصرار نکنید بفرمایید خوشمان خورو برقام سلام علیکم آچمان علیه حسن سچه دیروز رفت برمو پر نکردیم ایسان خودت دیلیش نیست برمو پر کنه مگه میخوایم پاساج بزنیم مرد مومد خیر خوب به امید خورم نه آجی گوش نه گوشمان شما از هم بگو که یکی از اون ساختمانشونو بدن به ما اینجوره بردن خیر اخو نخواستم شما در جریان باشی آره من خودم اینجا آره آره با امید خدا خداحافظ محمد چی از این خبری نیست محمد کدو محمد پسر فرو رفیق حسین اینا اصلا بچگی با هم بزرگ شدن با هم مدرسه رفتن با هم دیپلم گرفتن دانشگاه هم با هم می رفتن درس مهندسی می‌خوندن با جهاد رفتن جبهه با هم هم گم شدن ان شاء الله پیدا میشه سلام خب اگه حسین پیدا شده محمد هم باهاش بوده دیگه چون فرمال پر کنشون اونا که از هم جدایی نداشتن اه اه اه اه اه. پس اون پسر جوونی که کنار حسین تو عکس بود محمدی این حسینه اینم محمد دارن میخنده این شاله آقا محمدم پیدا میشه شما فرمال پرکنش کنم بفهم گفتم احترام صادت دلش نیست فرمال پرکنه چهل سال همسایه حالا دیگه باهم شدیم این اهودت خواهد بچه ها خالی فروغ صداش میکنه هر موقع که چند تا شهید میاره، انگار که بوی بچه ها میاد شنبه اول هر ماه میام اینجا من اصلا نفس تنگی از یادم میره فروغم اصلا دردای جور با جورشو فراموشو ببین من نیم ساعت دیگه باید به نیاد باشم شما این فرما رو پر کن من به بچه تجسس میسپنم این شاله از پسر فروغ خانمان خبری بگیرم به همدلوم فروغ حالش خوش نیست دکتر معتمدی دامادمه میگه خیلی دوام نمیاره اون دست خدا سلابوت حکمتی داره اما خب گناه داره بیخبر از محمد بیر خدا شاله خودش نخوش بود من دیگه باید برم این فرما رو پر کن اگه به مشکلی چیزی هم خوردیم جا آقای فومنی هست امکتی کنیم فرور نکردی که آشخنم الله آشخنم راه اینیکی پیدا شده حسین من نیست این محمد فروغه اگه خدا بخواد انشاالله حسین هم پیدا میشه من میرم به فروخ خبر بدم. خانم اکشنات هاچکانو نمیشه والا به خدا نمیشه چرا نمیشه؟ من که مادرشم راضیه حتما خدا هم راضیه پس یه مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما که نمیتونیم زلوخ بگیم که نمیشه با عوضتت یه مادر بازی کرد که هاچکانو شما همین کار رو بپنیم ما وجدانا مسئولیم حقیقت بگیم ما چهار روز دیگه مراسم داریم تحسیل جنازه است کلی کار رو گرفتری داریم والله به خدا این در بچهگانه شما فقط وقت و انرژی ما رو میدید اصرار نکن نشدنیه تمومیشم را سلام آقای فومنی آقای فومنی یه زمت بکش این هاشخانه رو آنمایی کن این فرما رو پر کنه یه زنگم بزن بگو من تورای بنیاد بازم مامان احترام چشم دخته به دریاچی کوچیک پارکی اسهلن صدا تو قبرستون ماشینا چه کار میکنی؟ از بین یه عالمه آهنگرازه لنگ لنگو میره تا وارد سوله میشه دمه در به کارگری میگه که آقایی رو که داره سرکشی میکنه به ورخ کردن ماشینا سبت حاجی تو این هوا سیگار روشن میکنیم آمد منو حاجی من فروغ جفتم و آفتا به لبه بومی امروز نه فردا اصلا من زودتر از اون بره. من داروبرم شلوغه. بچه هام هستم اون بنده خدا خیلی تنهاست اون میگه زهره افته دو سبار به من میزنی. میزنه اما من که میدونم اگه اگه پونزه روزی بارم بیسه این بزنه قیلیه اونم اون سر دنیاست اما اگه فکر کنه محمد کنارشه هر موقع دلش گرفت بتونه بره یه یه ساعتی باش درد دل کنه والله آرون میگیره گیره حاجی به فاطمه زهرا این خواسته زیادی نیست نه شما هیچ بخشی زیاد نخواستی نمی خواهم نامیده تو کنم من دیگه تو این ستات کاره ای نیستم به نظرم شما زود تصمیم نگیر به نفره بچه هم یه حقی دارن یه صحبت که این مشوره تو احمد اقا بکن به قول گفتنی ممکن اونا راضی به این کار نباشه معلوم هست کجا این شما؟ ساعت دوه مما علیکه سلام ببخشید سلام حالا میشه فهمید تو الان کجا بودین؟ نگه من بچه هم که شما نگران شدین کار و زرنگی تونو کردین اومدین اینجا که ببینین من کی رفتم کی بر میگردم دم به ساعت تلفن میزنین گزارش میگیرین بسنین سر پیری آقا بالا سر پید کردن کجا شما؟ میام مغازه نشقبون یه چیز بخر چه چیزی مسلا؟ چونه لل بگی من شارژم تموم شده برم شارژ بخرم بازم نکرده خودم میگیرم برد برد نگار مادر بیا اینا رو برای این مهندس ها بندی از صبح زیر رافتاد دارن زحمت اینای قرمون این نگار گفتند بشن زود برمیگر بیا مادر مانتوت هم بپوش شش که بکنین چند روزم استراحت بکنین درست بشین مثل روز اولیت دکتر جون این روز هم همینجوری زار و نظار بود سلام علیکم علیکم سلام. خدا رحمت کنی میز محمد جفر رو از دست همین عدا اصولایی این بنده خدا دقیق کرده مو چی میگه احترام میزمه هم جعپل خدا بیامار سی سال از من بودتر بود عمقه مو داشت دهمی ده سی سال بزرگتر بود تو اینجوری لوس شدی دیگه پاشه پاشو, پاشو بریم ور از سرمهتی کباب گرفتم من ده دهم میفته ها. اشتها ندارد همه کسی که تو جمع خوشحال میشه خاله بودید رویهون یادش رفته بذاره بامان جان آنه سراخت چی میخوایم کادو بدیم بگیدم براتون نیو سکه خوبه؟ بس دیگه ها بفرمایه پلاک های هم من دیدم خیلی قشنگه دوتر جون چی ها؟ بایدش هم هست خود کدومو بگیره بامان جان انشالله که آخر عقبت همه جوان ها به خیر باشه شما هم به سلامتی بریم برگردیم بهتون خوش بگذاره اما منو چی آخه مقرار راخت رفته بریم مشد چه وقت مشد رفتنه الان؟ مشد رفتن که برخش میکن هر موقع به تو کتا میریم اینه بابا را سمیده نگه با عالی به که هر وقت موریت گرفت میتونی شما به این کارا کار نداشته باش. قضا تو بخور رو بشه سر درسید ماما مشد ناخافل آخه اونا الان که میخواییم بریم عروسی؟ پای شنبه میریم، جمعه برمیگردیم شما شنبه بریم ها؟ ناراحت میشه عاطفه ها. شما هم دیگه زیاد چلوغش نکن. هشام خواب ایمان‌بزر رو دیدم. و بودی حکمتی دریشه. نغزه گردوش خیلی تاده. است. زود استفاده کنید وایلا تون میشه. خدافظ داد پرسه دادا. میشه جون؟ اما تنهایی میخوای بریم ماشا؟ نه. تنها نیست. ما هم باها. درسته. با هم. خدافظ داد جون. بول بول تایره خانم من باید برم اگه میهن بجو ماما موازمه خودتون باشین خدافر چشمان افرام صدر محشت خوش بگذار دکتور خدافر خدافر صحبت میکنی بردم خدافر بسلام خدافر بسلام. بسلام بشین غذا تو تموم کن برد برو نه میخوام برم چمی هم ما من برم تو هم بکن معطل نشیم دستت درد حسابی به طبی چسبید خاله فروغ آخرین لقمه ی کباب هم میگیره و با خودش میبره آخی خدا به خیر کرد که خاله فروغ گرست نش نبود نیکار با اشتیاق زوگانه رو تو هوا میچرخونه تا گل بندازه خوی اینو جوری میشه نگهش داشت میترزم برزه پا رفته بود کجا گذاشتمش آشباز خانه رو زیر رو کردم تا پیدا شد بابرد میشه احترام شیش سالو چهار ماهو نه روز لفت قلیان نده برم اینو که خوش شده حالا برو نیا حالا فروغ نیا آخه دختر تو که بلد نیستی مجبور مگه زغال قلیون گل آخرش هم زغالا روانه هوز میشن اونم صاف میریزن رو هندونهای راه راه احترام تو مطمئنی بری مصاله نداره نگران نرمز بایی یه بار کشیدن هیچ شدید چنونم خالف رو چه حالی میکنه؟ بدین من هم یه پک بزنم اجانت بکش دفته؟ من نمیفهمم چرا برای چی خلاف خلافه. این حاط رو بیارا نگاه یه الله آج با. بساس قیلگینم که دوباره رو شد بوشت ساری کوچی داری میاد <تصفيق> اینم سفارشتون این برنج شماله آسانه دیگه از این برنج سمیان نیستش بر برمک پریروز برنج راقنا آورده بودی ها میدونم اینا راستیتش داشتم میبردم برای این آقای رجری شما خوبی؟ شکر مشکر با دروسا ورتی احترام پی شده حواس فکری کرده احترام وگر روز خودت نگفتی برای اون خانوادهه بگی من جوی پشت, دوانده پشت دوانده. چادر خاله‌فروغ نگار یه پاچی به علی میزنه ام. فراموش کرده میگن که من حواسم هست مشکو بن اینارو ببر برای همونه که از تو بساسیشون اینجاست به بتو نگفتم نه آخه داماد ناهان حساب داره من دلت یعنی به هم خورد ای بابا پس اگه مورد دیگه فیشومه اینا رو بده بری برای اون عروس هم انشالله به موقعش چی کاری میکنی خیلی خب اینا رو بلاخره گفتی برای کی ببرم من میام در مغازه با هم حرف میزه آدم گیج میکنن اینا مامانه سرا تلفنمو شما کردم. کیه مادر؟ میتونم بله میگه ما مستافی هم. مشکل دیگه خود ما. سلام عليكم و جرا. سلام عکوشه. شما خوب هستیم انشالله خانواده خوبه. علیم دلشکم ما خوبی. فرخ خانی ما خوب است سلام در آبیت مدت. پلی پلی. پلی. چش، چش، حتما دست شما درد نکن خدا نگه داری حاج آقا مصطفی گفتم که از ستاد رفتی زنی زد بود حال احوال کنه. خیلی هم به شما سلام بس. خدا خیرش بده آدم خوبیه دست به خیلیه بله ماما یه پرتگال پرت میکنه سمت نگاه بله باز نکسون به حاج مصطفی ببخشین دیر که یعنی شما میفرمهید ما عقل منو بدیم دست اگه فردا روزی پشیمون شدن چیم خانه خبر دارن یه همچین تصمیم گرفتن خبر دارن ها چخانم اگه بلند شدن اومدن اینجا گفتن آم مادر ما پیر بود احساساتی بود یه تصمیم گرفتن شما شرکتیم بخاره یه حقی دارن که نمیشه اگه حقیم باشه مال همین مادر پیر این کار شرعن و قانونن خلافه بسلام بنده همیشون و هم خانواده شما سال هست بیشنس. پسر بزرگشون احمد رقا جانبازه بعید میدونم مشکلی میوجود ده اگه آقا محمد روز پیدا شد چی؟ کی جواب میده اولین کسی که بزن زیرش کدش آمده من نمیدونم شما توی این بیست سالی که اینجا بودی چیکار کردی ها جواب ولی از که جاویجایتون زیاد بوده به ادای فیس توی این بیست سال همه ما اینجا یه خانواده بودیم این کاری هم که اقام مطمئن دار منجایی که باید حساب پس بدن انشالله که مشکلی پیش نمید انشالله دارن ما را فهم می‌دهن. من چی فور می‌دیم داری میدونی که می چهانو فور کنن. اگر آشکانو مشرو بسپه پسرشون قبول ندارن، اون فور آوکو کنن. ما هم شهیدو شهید هم و بسپی شهید گومنه هم داشت می‌کنیم. همه مشخصات و مشخصاتو مدارکم موجوده. یه روز این نظرتون عوض شد. شهید گومنه. آشکان. رقیقه بیرون تشریف داشت روشید من موشم. شما که این همه ساعت سب کردی یه مدت دیگه هم سب کن شاید فرطی بشه شما برگردید شهرتون خبری شد ما به تلفن بهتون میگیم به میگن شوهرت مرده همشون مردن تو هم شهرن و عرفن بارو دنبال زندگی آزاده <تصح> کدوم زندگی فقط به حرفای زن گوشون این پیره مرد همه هم هم میگه بابا این به شفته اختده من چشم زنده از برمیارده من نمیتونم طوری امون وایس هم چرا اینا نمیفهمن؟ یه آجاقا آجاقا یه لحظه آجاقا معلومی که آجاقا مصطفی نهتونست کاریم جا سلام آجاقا مورم به درب سر اگه به منه که میگم همون توبه اتفاقی هم نمید برای ارکار یه حزینهی داری من یه مادرش پیلی بیتاقی میکنه جبون هم دیگه حاجی نمیتونیم که تقنه حبسشون کنیم که حرف نامربوط نمیزنن متعاملمون کم شده. بعد من... شد. من... با هولبزم شرمنده. خامازش. بعد راحت بودش. چرا سیگار روشن می‌کنه. اونم کنار احترام صادات با اون نفسای شما به شما خوب تو پارک نشسته. بهتر شداش خانم شما مقصد سیگار نکش خوب نیست برم نه یه پنج سالی میشود که ترک کرد اما از کردتار این سال اون به تو یه جا بگذارم شما یادت میاد چند سال پیش چه تعداد دختر نوجبون تو همین اسقف شده هیچ کس یادش نمیونه سلام باشم علی السلام اگه که پا میذاری تو حیاط صدای خال فروغ میشنه با کی داره حرف میزنن دیگو قابلمه مسی یاد دار خدا بود ما زمان می بدین به زهره پیوه دیگو مسی تو کانادا خیلی حال میده چه پوزی بده زهره خانم اونجا یا خبه فروت دیگو قابلمه مسی و لگن آفتابه که نشود وسیعت از من به شما مسیعت تکلیف خونه رو مشخص کنید خوانه تکلیش بلو یه بچه که بیشتر برام نمانده یه دیسته به پس محمد چی؟ دختر جان محمد رفته من و مامان احترام تردستایی من میدانیم فقط دعا میکنیم که شان پیدا شه، که اقلن دلیمان خوش باشه به ای که میتونیم بریم کنار قبرش. خیلی خوب باز حالا بکن باقی هست شوه آرستی، از شکار ای این قناری هست بدین احترام صادات که اون به عودانش خوب برسه. حالا شد اصل کاری قناری دیگه. خب ببین چی نمیخوای بدی مامون احترام دیگه. ببین چه اصیل تو دنگولیده شدم. آگه چش و حوصله داشتم خودم این بشم. مگه الکیه. کله فوتو فام داره. دو نیا دو نيو دوري تابینسو. نامه هایه که برای دخترم میوامت جوابش من میدم. برگردم. کودیام برای همه موارده تام بیشتر. بله. بله. بله؟ چنا مایی؟ تو ببینید به خود اگه بعد دیگه خواهش می‌کنم تو این وسط فقط دعوای مشقوردون کم بود درید پسر نوجوانی که پول کوشتی داره به شدت میزنه آخه جوجه کارش تو دارم بیا چی باش ها باشه این چه چند روز اینجا بیخودی براسه برای اینجا بیشتر هم نورو بره خونه شما امروز داشتم میمایدم دن بیخوشی اینجا پرسه میزنه که ما چی گرفتم ببین یا یه کمه دونسه اوشان نکنیم بازمی که از تو کوچه بجردی که بکنیم آه باشمهندس بچه‌رسان من دانشجو. ما به رنده دانشجو دانشجو. خوش با نمی می نمی می‌شناسینو. آقا جوادی یادت رفته ببین پاک حواس بچودی آقا. بابا سر کوچه مینیچسان چهار ما پیش اخواب کش کردن رفتن. پسر حو جوادیه دیگه. آره؟ بله. نگار هم تشریف آوردن. پس بیا بیا ببینم دیگه چی شده بیا. چیز ها گفتی دانشجوی؟ بله امسا رفتم کارت هم دارم حیل خواه نمی خود بسید دانشجو خوب نیست اینجوری علا تو گوچپس کجا بگرده اگر هم نیتی دیگه داری را و رست میشین تو این دانشگاه ها چی به شما یاد میده. لحظه شما لاد یا هم به خودت گرفتی که زخم شمشیر بردشتی نگار که منو دیوار کیز کرده که خالفون کنید دردش مپرسی من شو میرم به من دیگه بعد برم به خیلی مزایم شدم با آقای جرواجی سلامی من رو برسیم پسر موقعی رفتن با لبخندی از افران صورت تشکر کرد. خدا رحمت کنه مادرمون این ماسماسکو ساختن واسه کارهای ضروری ننکه بشه وسیله اسبابازی و هره کره گفتم برو مامتا تو بپوشو توشو بیا که وقت کردی صبح خواب سفیداب کنی ایرونه چه با حالت خوبه به جایی حرفه بیرسر و تب ببینم بلید کبزی برای محشر دفتن آخر هفته اونجا شلوقه ها نخه میخوسم که بیدنه پس ای قضیه نامه‌های آشقان این بود خاله فروغم اهل دل ها خدا قبط کار کار تاهر که شبون دایی احمد و کشون دیگه دلم برای امام مرزا تنگ شده یکی دو هفته که صبر کنی بریت قطار میگیرم دست جمعی میریم با هم دیگه اینجوری خیال ما هم راحت میشه استه درد نکنی اینشالله عبسید خیالتون راحت من هنوز انقدر پیرو از ته نشدم که نتونم تنهایی زیارت کنم. بازم شروع کردی که مادر جون، من میگم خانم دلگیر نشد اتفاقا آطیفه رو زنگ زده بود. انگار که فهمیده باشه شما نمیخوایم بیاید نا. هی hey, اصرار اصرار که خاله فروخ شما حتما باید باشین. احمد تو دیگه چرا؟ من که میدونم طاهر وعده کرده بیاد اینجا رأی منو بزنه. مامان جان، ما که روح هم خبر نداشت که میاد اینجا. همین دمه در اتفاقی هم دیگر دیدیم دختر جان سن سالی ازت میره تو که به این راحتی آشان میکنی یا بچه چه انتظاری داری؟ استغفرالله نگار یه تو که باور رو به خال فروغ کاری نه باشی حق با شماست اما طایره نگرانه یعنی همه نگرانیم نگرانی بگیم با این حال و اوزای خال خب عروسی برام رویش خوبه با تو رویه خال فروغ از همه اینا رو ببر بر سومنگی دوانه سرا کارتون گفت سود اینا تو دستا دردن کنم مادر جون از اول هم یه داشته تاره تو هم خورا و بیرا دروق میگیا اینم بود نه ای بابا تو داشت با شما سخت میگیری نگران نبا منو شما عروسی برو نیستی برو بگی بخواه فرو فرداسو بعد نماز خیلی نخواه یه توکیپا قراره به اونجایی برمیگرد بازم اتوبوسو یه آلمی دختر جوون که رو صندلی نشستن و خال فروغ و احترام سادات وسط اوتروس وایستدن چرا اومد امروز که شنبه نیست. چه داری میری اینجا؟ چاله مشغول میشی. فروخ جان. بچه‌ها دارن من دیگه ده. فعلا محمدی تو اومده. ان شاء الله حسین منم میام. آقای فیز که مشغول به هم زدن چایشه، چشم از حال بر نمیداره. داره. خانم مادر شهید محمد رضایی است. گفتین خبر رو بهشون بدن که داده حالا هم اومدن که برای روز ترشی جنازه اگر کاری هست انجام بدن چند دقیقه هم برن کنار تابوت پسرش من خودم فرمو براشون پر میکنم شما فقط لطف کنین آقای فومنی بیان ما رو ببرم سالن شاهد جلس. آقای فیز پاشت رو که از اتا فروغ نگرانه که سر و خوب باشه که داره میره بهش رسید. آقای فومانی. آقا این طرف سالاد روسریشون ملتم. آقا بفهمونید خوراق وقتی بکنه. این متوجه تا بود. بله. متوجه این که. بله. باشه رو در نه آقای مصطفی بله نه چه جرهی بفر باشه خانم یه لحظه شما خالفورو دم در سالن شهدا وای ساده پاش پیش نمیره احترام یافم خوبه آتوانی بفرمایید اما بالاخره میره قطار تابوت ها همه مثل هم با پرچم ایران اما روی تابوتی با یه ترمه پوشونده شده و رحل قرآن روشه خالف رو به سختی کنار تابوت میشینه و هر دوتا رو میذاره روی را اسم نداری منو وسهج کنم ایسرم سادات بیرون ستات منتظر وایساده اما بالاخره بغزش رو رو به دیوار سنگی میشکه دستش رو روی سنگ میکوبه و سرش رو میذاره روی اونو های های هاش میگردن. اما تا صدای زجه خالف روغو میشنوه فوری عشقاش رو پاکی کرد. هی, پسر ای بری. بری. هی ملقی ملقی پیش خالف که ترمه روی تابوتو چنگ میزنه و رهاش نمیکنه برای رام نمیتونه جلوشو بگیره چه بار سنگینی رو میکشه این اعتراض جوون و گریه ها و التماسش خب باش اقا اگه حق و لازم بود یه کلام میگو این هم حضو کردم منتتون رو کشیدم خدا و پیغم یادتون رو داختم گروه خانم گروه میگم بیام به جونتون افتراب وازداشت کننم بازداشت کنم بیوازداشت کنم بیوازداشت کنم بیوازداشت کنم بیوازداشت نه. نکشیدی نمیشنم تحبیق بگیریم همینونو ببین دست فرداد شایه کنن که دارن تو ستات شاهده رو جا خیلی هم عرضو سرماچ سلام علیکم کجا یکمی حالش خوش نبود تو نمازخونه خونه دراز خوب میشه خوب میشه؟ پیرزن زن بدبخت به این روز انداختین حالا میگه خوب میشه؟ این خبر نداشتین که باور نمیکنم. دو تا پیرزن عقلشون به این چیزا نمیرسه. شما یه کاری کردینا بیا ما رو بزنن تو عمل انجام شده. حاج آقا هیچ تقصیری نداره. اگه کسی مقصر باشه من. چه فرقی میکنه حاج چه شما چه ایشون منو وادار کردین دروغ بگم. چی شد؟ هیچی. فهمید همش صحنه‌سازیه. معلومه میفهمه. مادره خب اینا بچش رو کی شما به جای اینکه توجیه کنید، دست از این افکار بچه‌گونه‌اش برداره بیشتر تشویقش کردین؟ باشخانم من امروز دعایتی تو کردم، اما مثل که شما دست بردار نیستین. با رو در جریان بذاریم، این شاله که اونها عاقل‌تر از شما باشن. خیلی خوب. تا خوش خوش. من اشتباه کردم. اتفاقی که افتاده کالشان شما نیست فقط باید یه فکری بکنیم که هر چیز به خیر و خوشی تمون بشه. آب سفا رو معکوش. برصادیم آره خیلی فکر خوبیه بهش بگی ما دروغ گفتیم و این نیتمون خیر میه. ب بفرماید بفرم. بین از این چهار دستاتی پیدا کنیم ببریم بگی ما آره رو ایشونه بفر این دیگه شاید این که بقول شما چیز به غیر خوبی تمشا بده. بچه غ شسی آاشخالون. کجا آشمانوم؟ ستا داری خیلیم هم داری میری؟ فروخانوم تنهاست بهتر برم پیشش من چنین قضیه روشد نکنم که برنید آقای با یه آلم بغز و عصبانیت پاکت لوازم گلی و خاک گرفته شوهدارو میریزه رو برسیم اونا چهارتا تیکیه اسکتیم اینست هر کنومشون یه دنیا آرزوی خاطره برشدی شد آقای مصطفوی اون وسایلو دیونه به دی اینا جون دارن. دارن من دارم دارم با ما حرف میزنن من ندارم شما از کجا اومدی ولی کجا خیبری بری جوونی جوانی دوست نداری که تو اینجا تلف کنی میخوایی بپری بری اون بالا بالا تشکالی هم نداری ولی بعض وقتا یه روز تعطیل اینجا گششطگاه خوب گوشگاهحتما سرشون خال فروغ تو ماشین آقای مستفریم وقتی احترام سادات دستش رو دست خال فروخت میذاره نگینای سب زنگشت دراششون چشم رو پس مجم ج در میگار بفر پس شما در نکن نفرم تو چیزی خواستی بکن میگم بچه ها چیز نود بزرگ میشن دختره هم و روغاست؟ نه دختر تا خدا ب بازم صدای تلفوان بره بیشتر حواسش به حرفای حاجا خو مصطفیه حالا، سلام. بین من خودم بعدم بهت زنگ میزنم حید بابا فکر میکنی اگه یه مدردی افته اون تو همه چیز حله درست میشه والله نه جریتر میشه ما هم که چوبشو خوردیم خودت میدونیم کجا فرستادن هم. بله حاجی این آتیشیه که دامن همه اونو میگیره وقتی میفهمیم که دیگه خیلی دیشده بله هران چهرمند برمان خودم بروس باز چی فکرم با جاقا مستفری سیگارشو نصف می که مثلا کمتر بکشه و اون آتیش بزن. همه گرفتاری هر کسیه چه این چا چا. مشکل اینجاست که ما با این زمونه جور در ما معتیقه شدیم نگه آجا باید مثل ماشین های از شما بریم زیر دستگاه چرا اینجری شد آجی من کار بعدی کردم نه چون کار باید نکرد حال از حقتت گذاشت چیزی به این خودمون رو ببونه بهتون حسودی میمیشه به وقتش دست رو هم خب. یا موازو فروغ باش با میره با احترام صادات روی تخت روبروی حوز آبی وسط حیات تک و تنها میمونه تو اتاق خال فرو ضبط صد کنار قفس پرندست و هر دو خاموشن خال فروغ هم همینطور. نگار که همچنان تو خودشه دنبال صدا آروم آروم از اتاق میاد بیرون احترام باید اینه تمامش کنم جاکت شیش باهی شده مصیبت چه فرزشه ولی سفر رفتن مشهد ما ایکی نمیشه با بالگردن باشه باید تمامش کنم تمامش میکنی پنجشنبه عصر میری یک کوپه در بستم برات میگیرم که تا خود مشهد راحت راحت باشه خدا خیرت بری تا پنجشنبه باید تمام بشه شیش باهی شده کار من سده داری باید قبل از رفتن به مشهد این تمام شد. آره. تمامش شد. واس خوبی که طاهر این کپسول اکسیژن رو آورد. این شب کلی به درد خورد. سلام احتراما. سلام احترام. سلام پیرشی ماده تو دیگه برو به درستم عشقه دارست اما نیگه استرس نسته میخواد یه چیزی بگی دیشت منتاره به دای احمد گفت از شنبه که رفتیم ستاد اخلاقتون تو شده گفت برای سری ستاد بزنه من گفتم چیزی نیست شما فقط نگران خال فروغین ولی دلم شور میزنه نموده دل شور رو نزنه تو دیگه ما بزرگ شدی میفهمی من چی میگم یه چیزایی رو نمیشه گایی به همه گفت آقا همی که نمیفهمم ولی تو فرق میکنی تو دیگه شدی رازدار من و خالی فرو تو دیگه از خودمونی نگار خانم از وقتی که رازدار بزرگای این خونه شده خوبه که تو آشباسخونه پیدا شده و یه استکان چایی میریزه البته از اونجا میبینه که مامان احترام چطور دردشونش رو تحمل میکنه سینی مسیح لبکنگره و استکان کمرباریک و غون سفالی <تصفح> <تصفح> خیلی خسته ای. بیا که بدم. چی برو به ماساژ بدم کنی. یهوش اون سوخونامو خود کردی. اه. نکن خدا رو شد که ماما نهتران درش به خنده باز شد خوب تا لنگت دار میگیدی میخوای باز خاده تم برخانی شباسی رو انداختی چقدر تم نیست گفتم پنشنبی میریمشت از الان شاله کله کردی برسطن پینه نمیزد زیر اون کتی رو روشن میکردی چند شب پیش خوابش دیدم همیشه خوابش رو میبینم اما این دفعه فرص آمده بود پشت در زنگ زن من نشنفنم صدا کرد مامان فروغ مامان فروغ چرا در باز میکنم پا شدم برم در باز کنم که ای دل درد بامانده امانم برید و بیدار شد فهمیدم داره میام دیروز که رفتیم ستات دیدم خوابم ترمیش شد احترام محمد بود خورش بود میتنم قضیه برشد هم ملکی بود میخواستی عروسی بچه ها نخوره فکر خوبی کردی بذار نفهمم حلق و گلو خوش شد پس این چی شد احترام الان حاضر میگم احترام حساس هیچی این که همیشه با خدا رو شکر که احترام سادات پشت سر خاله فروغ بود خوبه که خاله فروغ لرزش وجودشو ندید چه عجب این دفعه احترام سادات و خاله فروغ رو صندلی نشستن تو اتوبوس سلام علیکم سلام علیکم حسنا سلام علیکم آقای فومنی به ما گفتن اینجا بشینی فرمو پر کنیم تا شما تشبيه حاج رحم حسنا آقای مصطفی بله یانل خیلی زیادیم این رفت شدیدیم گوزه ما خیلی داریم مزاهمت میشین بخیر داریم بزنم یه چند کنون بیرون بروتونه آف بزنم خیشمان خیشمان شما تو این فرمو پار بکنیم من میریسم خدمت بایی چیزم دفترام چی؟ بازی جدید این آتو شما تشکه نه داشتی مزایرم گرفتاریتم خیلی هم در جریان. آقای حالا احوال این منتظرا رو هیچ کس جز درد کشیده های همین انتظار نمیدونه. آقای فیز یه نگاهی به زن میندازه و نمیدونه دیگه باید به اون چی بگی آجام همست که همونده شما دوسته با نفوز زیاد داریم خوب از اصل افتادیم از اصل که نهیفتادیم که این کار درست نیست من مجبورم گزارش کامل این اتفاق به مسئولیم بدم کامل هر اتفاقیم یعنی بیفته مسئولیتش با شماست آمیران نداره خونم کاتون مسئولیتشون پذیرند که شما خدای نکرده گیر نباشید نه لازم نیست باز هم لازمه خانواده‌شون رو در جریان بذارم از انسانی دیدی بایفس من بگم حاج خان گفتم که شما خودت وظیفه شون مشکلی شما در مورد میگه. باید من سرچو شده و کنم نه دایی خوبه ممانه تا من تو اتاقم کاردشی صدام کنم باشی برو. فرق در جون جونم دایی به به خاله فروغ مزنی ممکنه کاردش داروش چشت دایی امروز خاله فروغ از صبح بعد خلق بود باتن بریم بیرون شاید نذاره حسدش بیاد سر جمع کم حوصله شده جد خالی رفتیم کبابم خوردیم اون چی میشنستی تو هر حالی که باشه برای خوردن حاضر به یراقه اما اخمای دایی احمد با این تعریف باز نمیشه نگارم روی تخت تو حیات روبروی حوزنش است اما این شکلشش به یه حرفایی دایی مانده تا هره گفتم برای تون گرفتن که رفتن. نشون بدین دیگه بهتون پیله نمیکنه خیلی خواستم جور کنم که نرم باشون کارش ولی نشد موازه به خودتون خالو و روح باشید احمد گلیت ها رو روی میز میذاره و با نگاهی به عکس حسینیت جاش باید باشه میره در پله اما دلش نمیاد که سر مادرش رو نبوسه بر می و با حق حق میره رو. <تصفيق> وای که این ستاد چه گروه مخفی درست کردن نگار که بچه گروه بود تیز پا آروم میاد تو حیات و حرفای مامان و باباشو پشت در میشنوه آنا دلت حتما مامانه. ای دختره، بیا تو یسکون چای می‌خوره میرم. تو رو نمیشه که، بیزارم، قر شدت. قدیان بس تا تحیاتی. بیا نزد مامان در لا لا. اوه، حالا خونه. این چه نمودی باشه؟ جواب نمیدم. اصلا خونه نیستن. چراغام که خاموشه. خب گلم برای همین شور میزنه دیگه. کجا رفتن یعنی این وقت شب؟ شما که گه میشه دلت شور بزنه. بچکه نیستن. ولی چی داری نگارو ببینم نه روچه هم یه جوز هشمون بکو به تا چی میگم خواهد؟ هرچی میخوایید بکو فقط ردشون کن بریم باشه باشه بله سلامانچن خوبی؟ کجا این؟ من منو ماما نهتران و خال فروغ اومدیم دربند خیل دربند از چی اومدیم تفریق کنیم دیگه آره آره نه فرغم قشم اونجا رو تخت لم داده و این در قیلیون نمیکشه نمیکشه یعنی بکشه موانه ترام نذاش آره آره نگران نباشین دیگه آره ما برمیگردیم باش ببینیم قربان شما خدافز حال کردین چجور پیچوندمشون؟ نه جان موانه ترام حال کردین مادرشان این چه ترزه هفت سادامه حال کردین یعنی چی؟ یعنی حال کردین <تصفح> ایو بل خالف خب بقیه هشو بکنی چی؟ با با تازه رسیده بودیم به جای خوبش دایو سین نامزد نداشت یعنی عاشق کسی نبود دختر جان عمر اشق و عاشقی به انداده عمر آدمی زاده شما فکر بکنی شما جوانه کشف کردین عشق و پس عاشق بوده محمد چی؟ این محمد دل نداشت به قولی شما شبانه ها اند بود کی؟ جمع خلاف روغ بگی؟ آشق مادر همین ندا خانم که پردش برسی شید خاله آتفه؟ دای چی؟ اون آشقه کی بود؟ آشق مادر نیده خانم که پردش برسی گرفتین منو جفتشو؟ کی برد؟ آقا موسی آقا موسی کیه؟ شوهر آتفه خانم <تصفيق> آقا چرا؟ چرا ندر دو خزان از اول دنیا همی بوده این دوت جوان اینقدر رو در بسیه هم مونده تا آخر دوز دو سبم اومد زد و بود یادش بخیر محمد وقتی آتفه رو می دید تا من قلبیش اشکرمارم بیشید دایی حسین تا وقتی یاد تفرمیدی تا فرق سری سرخ میشه یادش بخی واقعا یادش برای تو شدن بیمار و خسته فرستادم برات گل دست دست تو رو تا مادره بسته دل ما رو خدا یک بار بسته جونی جونی یار جونی رشدی و ماتن درون. این سفرهای اتوبوسی احترام ساداتم ماجرای واسه خودش. بازم خیابونه و آدمای ریز و درشتشونو. این چند روزه خیلی مساعد شما شده. میتونم یه خواهشی ازتون بکنه؟ بفرم. اگه اشکالی نداره. من چند دقیقه برم کنار حسین فقط چند دقیقه بزنم آقای فومنی در سالن شهدار رو باز میکنه پای احترام صادت پیش نمیره مادر هر چقدر دلتون خواست میتونید بیمونید اگه میخوایید درمان ببندید که راه زر بدم باید اول سر و روش مرتب این باری که از جلوی مغازه مشغور بون رد میشه خوبه که اون خوابش برده و کلاش رو چشاشه و دهنش باز وگرنه کلی لیسال جوابش میکرد. نگار با لبالوچه آویزون پاش جلو نمیری که از پیش مامان احترام بره. اما راه رفتنی رو باید رفت. ماما زود باش دیگه دیر شو. حالا باید دیگه. مادر بیا اینا رو ببر تو راه لازمتون. چرا دوباره زحمت کشیدی مراخه؟ همش سه چهار ساعت تا اونجا. زحمت کشیدیمه. می‌خوای که چایی هم بذارم ببری؟ نه مامون قربونت برم برای خودتون ببری یه وقتم غذای تو رو, رو نخورین نه. یه چند تا درست کرد. خیلی خوبه. پس اینو سرعق بده به از صرف منو درد نگار ماما تا ما ندیم بیمارستان بابت رانه می ها زود باش ماما جو انتماس دعا موازه خودتون باشین زیاد با من برم از خالف روغم خود حافظی کن سلام نگار اومد یا الان که مرزی در دردید میره قرآنو که دست مامان احترامه بید روسته و عزیزش زیرش وقت میشه و محکم مامان احترامه این بار ماما بی مقاومت اونا تو بقلش پشار میده برو مادر خدا به رو نگار تو این چند روز خوب بزرگ شد حالا دیگه رازدار بزرگ هست فردا از طرف من روی ماهش رو چشمای نگار سنگین ازش اما مامانش نباید بگید مامان احترام باز میره سراغ ضبط سود کارت دانشجوی حسین رو میگیره جلوی چشاش رو بهش خیره میشه روکش کارت اونقدر زرد و کهانست که فقط اسم دانشگاه علم و صنعت ایران روش محلومه ساعت زنگ زدش انگشتر عقیقش که فقط عقیقش سالمه و حلقش سبز شده از فرت موندن تو خاک کنم انگشتر رو میذاره تو انگشتش و قرآن کوچیکو و پاره رو میبوسه و میذاره رو سینش پلاک حسینو آویزون میکنه روی عکس جپش که گوشه آینه گذاشته کنار عکس نواهای شیتونش. فرو فرو خانو. برو نمیخوای را بیفتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته آخر نماز چه وقته میخونی دیشب تا صبح چشم هم نذاشتم از این دل درد ده دو گوستانم افاقه نمی کنی شم تا صبح تا وان نمی میره. شد میمدی اون طرف. ساعت چند باید جلو من ست باشید؟ 11. لباس محمد آقا دیشب تمام کرده. این خوب شده؟ قشنگه. خیلی قشن شده شما خوبی خوبم نفسگاهی یاری نمیکن خوبه. برو شما کاراتو برست دیر میشه شو. من و شمان دیدنی هستیما امروز تو شلوغی سر سالم به در ببریم خیلی میگم شنبه یه تو که با بریمه داری پست لباس محمد آقا رو پستش کنیم به موقع دست چند که باز از نگرم نگرم آره باید پست کنیم به موقع برس زهره میگه اینجا خیلی سرده خب گردن کوچولو هم بوافت دل خوشی برم شده محمد آقا ساده یازه باید بریم مسجد خیلی بانده کاش سره رو یه آنکولم بدنیم به تو خودم روسته میکنم دلدت امانم باریده بالاخره وقتشه که از پله های فرش بالا بره و در اتاق حسینو باز کنه همون اتاقی که به هیچ کس حتی نگار اجازه نمیداد که از این پله ها بالا بره و بره تو اتاق واسه. انگار خاله فروخ صدای احترام ساداتو از پای پلان نمیشنوه. چشای احترام سادات از فرد گریه و بیخوابی قرم زن و حال عجیب و غریبی دارن. پاهاش نا ندارن. اما به زحمت و با کمک نرده بالا میره. خال فروق تو سجادشه. نفس احترام سادات به شما افتاده. اما روی خودش نمیاره. تلویزیون تصویر تشیه و داره پخش میکنه و احترام سادات دست انگوش در پوشش و روی سینش میذاره میشینه روی تخت خاله فروغ و لباس بافتنی کوچولو رو میذاره جلوی عکس محمد حسین کنار شیش های شربت خاله فروغ دست انگوش در پوشش میوفته روز آنوش و چشمش خیره میمونه به عکس و سرش تکیه به بخاری دیوار برای همیشه میره پیش حسین و روی ما بوسیدنی می شود گزاریم که در روایت این فیلم هم همراه من ملیح شبانیان نویسنده و راوی و بزرگواران همیشه علی حاجی نوروزی صدا و فرشاد آزرنیا سردبیر و تهیه کننده این رادیوفیلم بودید. و باز هم تا روایتی دیگر از همین مردمان ساده دل بدرود.